اما درس بعدی قاعده 13 کتاب لهو الواضح در رابطه با چی سخن میگوید قلب الواوی و الیا تاءن تبدیل شده واب و یا به تا و یا تبدیل به تا می شوند فرمایید در در بسیار واضح توضیح داده است وصاله این فعل ماضی هست اگر همین باب رو به باب افتعال ببریم ماضیش شو چی می شود؟ افتعاله ایو تسله ماضیش شو می شود در اصل ولی می شود واف تبدیل به تا می شود ولی واف تبدیل به می به تا می شود وعظه به بعضی افسانش میبریم میشه افت عزه که میشه افت عذه میشه ات عذه نظرشش میشه یافت عزو باسترش وصله هم یا اتصال یسره به باب برده شد. در اصل می شاد ای تسرا از اف ای تسرا اصلش هست ولی می شواد اتصره که خودش در امسله هم اصلش آورده و هم اینکه که تبدیل به چی می شود القائله قاعده اس اذا وقعت الواب او قبل التاء زمانی که واب یا یا قبل از تا قرار بگیرند تای باب افتعال قبل تا افتال قبل از تای باب افتعال و ما تصررف میل و هر کلمه دیگه که متسررش از باب افتعال باشه یعنی چه مازیش چه مزارش؟ چه ممسرش؟ چه اسم فائلش چه اسم مفعولش فرقی می و ما تصررف میل و هر آنچه که یل؟ متصرف شود تقلب و تا تبدیل به تابی شود اگر با زبان ساده بگوییم مثال واوی و یایی یعنی اونی که فاول حرف الله هست حرف الله واو یا یاه چون الف نو در ابتدا بیاد الف من قلبه. در این حالت و, و و یا زمانی که این مثال به باب افتعال برده میشه تبدیل می میشهد یک تا که با مال خود باب افتعاله یک تا که همین حرف و و یا تبدیل به شدن میشهد دو تا تا که در هم ادغام میشهد و ساله کی که میشهد اتساله پس اتساله یتسلو متسل متسل اتصال تمام آنچه که از شب شد یا سر اتثرثیر و متثر اتتصاار و غذا به با افتعال ببریم اتعاد یض و اتاق عا بسیار ساده قاعده سیدهم کتاب نحو الواضح